بسم الله الرحمن الرحیم <سؤال> فبشع العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صلاة و على رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله عليه وسلم دوستان گران قدر در حبد همین برنامه درس های عقیده از قرآن و سنت قرار داریم دوستان عزیز اگر فکرتان باشه در ختم درس قبلی که ما در آیت شریف رسیده بودیم که عوض بالله من الشیطان وجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلا و ربک لا یؤمنون دمی شریف رسیده بودیم که برنامه وقت پوره شد ببینن ای آیت شریف که ما البته بحث ما سرازی بود که ما در باره واجبات کلمه طیبه فکر بکنیم که چی بالای ما چی و ما داریم چی با داریم وقتی که ما کلمه طیبه را میخونیم ای که فامیدن از این کلمه بود یقین داشتن به این کلمه بود و اخلاصی که منافی شرک بود چارمش صداقت در اعتقاد بود و پنجمیش رضایت و تسلیمی بود کلمه رضایت و تسلیمی در عقیده شاید پیش بسیاری کسا اتوی قسم گونگ بوده باشد لکن اگر امی آیت شریف ما شما بخانیم ای آیت شریف بر ما امی موضوع را بسیار خوب با سراحت بیان میکنه چی معنای رضایت و تسلیمی مانه رضایتی است که یک انسان وقتی که در یک مسئله اسلامی در دین اسلام در حکم میشه. مثلا برای یک زن مسلمان حکم میشه که تو باید هجاب بپوشی. و این زن اینمی هجاب لاکن وقتی که از پیشش پرسان شده که خواهرمی تو هجاب میگه والا چطور کنم خاطر شوهرم از یا مجبوریت است؟ یعنی راضی نیست خودش. راضی نیست. یا مثلا وقتی که حکم الله جلاله جلالهو برش گفته میشه شاید تطبیق بکنه و من بره برش بگه که اینی حکم الله جلالهو و حکم رسول شسیره باید تو تطبیق بکنی شاید ظاهرا بگه بله من ایره قبول دارم لکن اگر از پیش پرسان در قلبش احساس دلتنگی بکنه در یایت شریف ببین اینجا رضایت و تسلیمی اعوذ بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون الله جل جلوه داری آیت شریف میگه که قسم از و پروردگارت که اینمی مردم ایمان ناوردن یعنی ایمانشان درست نیست تا چه وقت؟ لا یؤمنون حتی یحکموک که فی ما شجر بینهم ای پیغمبر که پیغمبر صلی تا وقتی که تر حکم قرار نتن در چیزی که در اختلافاتی که بینشان ایجاد میشه یعنی در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تعلیمی تربیتی، خانوادگی آن مشکلی که باشه وقتی که برای یک انسان یک حکم یک مشکل پیدا میشه پس حکم باید که به گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا؟ کلمه میخونی که لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی که لا اله الا الله محمد رسول الله راخانی چی تو باید اینمی در اختلافات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رسول الله صلی الله علیه و من حیث حکم برد قرار بدی که رسول صلی الله علیه و چی میگه در این قسمت قرآن چی گفته و پیغمبر اسلام چی گفته در این باره و مطابق ازو فیصله بکنی تا وقتی که در مشکلات خود انسان رسول الله صلی الله علیه و حکم قرار نده اینجا سلب ایمان از پیش ازی میشوهی کلمه خوانده نزی دروغ خوند ثم لا يجد فی صدور انفسهم حرج مما قضايتم. باز میگه که لا یجدو فی انفسهم که یا نبیفن در نفسای خود حرج مما قضایتا وقتی که رسول الله صم فیصله میکنه در اینجا دلتنگ نشه که و الله میگه ما قبول کردم خب قدر راضی نبودم گفته باید این این در حرج نباشه یعنی امیر به رضایت و بگوید که آنچه که الله کرد و آنچه گفته و آنچه که رسولش گفته اسمعوا و الله و رسوله. قلبی چون ایمان ارتباط میگیره با قلب خب ثم لا یجد فی انفسهم حرج مما قضیت و تسلیم تسلیما انسان چی شوه کاملا تسلیم شوه پس ایمان تو وقت قبول میشه در کدام شرایط اول که وقت کدام مشکل در خانوادیتو پیدا شوه یا مشکل اقتصادی باشه، یا سیاسی باشه، یا اجتماعی باشه، یا تعلق با تعلیم و تربیه بگیرن. در هر بخش زندگی که باشه، بگی برادر، نگوی که الان میریم در محکمه روس، میریم در محکمه امریکا میریم در محکمه فرانسه، میریم دلیل نه. میریم در محکمه و در جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که چی حکم کرده، پس ما در قسمت حکم شریعت اسلامی را سرخو تطبیق میکنیم. و وقتی که این نفر، امیان یحکموك فيما شجر بينهم كرسول الله صلى الله عليه من حيث حكم در کجا قرار بته؟ در امی اختلافات و مشکلات خود ثم لا يجد في في حرج مما قضيت باز وقتی که برش قضاوت شد دومیش وقتی که برش قضاوت صورت گرفت و برش گفته شد که برادر تو چی چیز میخوای روسی چیز هم میخواه، امریکای چیز میخواه، فرهنگی چیز هم میخواه، رواجی چیز هم میخواه دین اینی چیز هم پس قضاوت دینی است که تو باید این کار این قسم بکنی و این نفر میگه واسه چی کنه؟ فیصله شد سرش وقتی که فیصله شد فیصله چی هست؟ فیصله است که علامه شیشتن و برش برادر فیصله نمی قسم هست. الله و رسول شیخ هم گفته بنا سر تو حکم میشه پس این انسان مسلمان ثم لا یجد فی صدره ما اینجا حرج دلتنگی هم از قضاوت رسول الله صلی الله علیه و نداشته باشه و یسلم و تسلیما و سیو میشد که اینا کاملا تسلیم شون شما ببینین یک صحابی مبارک وقتی که قضاوت الله و رسولش میشد چی میکردن یک صحابی مبارک مثلا از اشتباه میشد زنا کرد آ ماخود نفس سرم غالب شد و اشتباه کردم و غلطی کردم لکن آل از یک طرف مسئله ایمان مطرح است و از یک طرف گناه است من گناه کردم اشتباه کردم از این خاطر این صحابی مبارک چون ایمان قوی داره میخواد که حکم الله جل جلاله سر از این تطبیق شود و من پیش رسول الله و برش اعتراف میگن که ای پیغمبر خدا من این اشتباه این گناه را کردم حکم شریعت اسلامی رو بالای ما تطبیق رسول السلام روی خدا یه طرف میگردنه، باز و با طرف دم رویش میه باز روی طرف میگردنه، باز برش پیشش می، و برش میه که من اعتراف میکنم اقرار میکنم که من اینمی گناه را کردیم حکم الله را سرمت تدبیق بکن اینجا مشکل اساسی همی هست که انسان مؤمن واقعی حتی از جان خود تیر میشه این صحابی میفهمید که اگر من اعتراف میکنم و میرم پیش رسول الله صلی الله علیه و پس حکم مصر من تطبیق میشه من خوازم بین میرم زندگیم کلش از بین میره لکن این میخه و خاطر چی؟ باز دل تنگ نیست میگه باید ما حکم سرم تطبیق شود و یسلم تسلیما و, تسلیم و به احکام الهی کاملا تسلیم بودن پس چطور انسان میتونه ادعا بکنه که من ایمان دارم و وقتی که برش زندگی فامیلیش می باشه باز مطابق رواج ها فیصله میکنه مطابق رواج و زندگی فیصله میکنن. از این طرف ما میخونیم که امی بعضی از رواج ها و فرهنگ ها که است ای اسلامی نیست و این انسان میفهمه که ولی این رواج اسلامی نیست و اسلام حتی در تکر از بعضی از رواج های ما مردمی افغانستان لیکن بازی نفر چون مسئله رواج میشه و اینجا غرور میشه و تکبر میشه باز امیگفت قبول نمیکنن. بسری سری بسری کسی را ببینید وقتی که برش میگه که برادر دمی آرسید نمیشه که همی سازوس، امی گناوی یا پا چیزار نباشه ای احیانا اول قبول نمی کنه. باز اگر قبولم کرد با تنگی اینجا در آیت قرآن چی میگنه لا یعنی ایمان ندارن و قسم خوردن وقتی که فیصله الله و رسولش قبول نکنه باید فیصله را قبول بکنی آنچه که الله و رسول گفته و ایره وقتی که با جسم خود قبول کردی قلبا راضی باشی حراج در قلبت نباشه دلتنگی بگیم الحمدلله خب شد که آنچه که فیصله الله و رسولش بود ما قبول دارم و می یسلم و کامل خدا هم تسلیمی باشک ما به با احکام الله و رسولش تسلیمی هستم مسئله ششومی که در اینجا هست مراعات حقوق هس که وقتی یک مسلمان کلمه را میخونه میفهمه که این کلمه دارای کدام حقوق است. وقتی که حق کلمه را فهمیدیم، پس به این کلمه مطابق اونمو حقوقی که این کلمه داره حقش را حق یاد گرفتن این کلمه حق فهمیدن معنای از این کلمه حق کلمه هست مطابق از این کلمه 24 زندگی کردن و مخالف از این کلمه کاری را نکردن و وقتی که ما حقش را کردیم و گفتیم که مثلا اول ما حق از کلمه را ادا می چه قسم؟ این کلمه را می فهمم. دوم حقش این کلمه را خانم حق اولش در قلبم تصدیر کردم ایر خوب فهمیدم و مطابق از کلمه زندگی میکنم و مردم به آنچه که کلمه میگه دعوت میکنم. و مردم از مخالف مخالفه، ای کلمه هست، ما مانعت می کنم. پس این وظیفه نیست که مثلا شما تو تصور بکنید والا ی استاد در استادیو شش برنامه رو ثبت میکنه، این تنها وظیفه ای از هست. نخیر برادر عزیز خواهر محترم، تو هم وظیفه داری. والعصر ان الانسان لفی خس. نگفته که، گفته الله قسم میخورد گفته انسان هر انسان در زیان و نقصان است این است که والا ما در نقصان تنها یک تایفی مردم است کلگه الا الذين امنوا كسلك ایمان آوردن و عمل الصالحات و تواصل الحق و تواصل پس دعوت کردن وظیفه تو هم است اگر در بین خانواده تو یک کسی و میفهمی که دلینی شرک مبتلا میشه و تو خدا خاموش میگیری از ساکت عن الحق شیطان اخرس کسی که در از حق در حق، گفتن حق سکوت میکنه این میگه شیطان گنگ است خدا به شیطان مبدل کردن پس رساندن عقیده اسلامی و گفتن حقیقت اسلامی وظیفه هر مسلمان است از تو هست از ما هست از هر مسلمان است از این خاطر اگر آدم هیچ چیز کرده نمیتونه مثلا میگه والله من علم ندارم درست اصلا نداری سی دیه می درست رسانده میتونی نمیتونی آیا مثلا کسی تا می درست در موتر دنداخته میتونی یا نمیتونی که دیگر هم از استفاده بکنن در خانه تا نمیتونی برای مردم برسانی به اولادایت برسانی پس به هر شکل انسان میتونه که برسانه از این خاطر کوشش بکنیم که در دعوت به عقیده اسلامی حتما سهم بگیریم چرا آتا نشه که در روز قیامت مردم از یه خنم بگیره و بروی بگیر پروردگار رو می میفهمید، لکن این ما را نفامان و ما به هزارا عمل بد شرکی از جهل. چرا بسیاری وقتا شرک از جهل در بین مردم پیدا میشه. هفتمین واجبی که در مقابل عقیده اسلامی ما شما داریم او عدم تسلیمی به قانون دیگر است. عدم تسلیمی به قانون دیگر است. هست. يعني اي كلمه محتوايش ايش محتوى هذه الكلمه هي كي وقت ما نقول لا اله الا الله ليس اي معبود بحق يرد ترجمه ما ليس اي معبود بحق وقت ما معبود بحق نشوت ازيدگاه اسلامي معبود حق كي هست وقت كي مگيم الا الله الله بغير الله, الله جل معبود بحق نيس. یک معبود به حق ما، الله جل جل است اینال وقتی که معبود به حق نیست، پس معبود حق کدام ذات است؟ معبود حق ذات است که ما او عبادت میکنیم. معبود به حق ما بر ما قانون میسازن. پس اینال نه ما عبادت غیر الله را میکنیم و نه به قانون غیر الله تسلیم میشیم. آیت شریفه که وقتی در قصنات قسمت بخونیم بر ما خوب واضح میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر إلى الذين یزعمون أنهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلك دی شریف الله جل جله بر پیغمبر سمی میگم آلم ترا إلى الذین یزعمون انهم بطرف کسانی که یزعمون گمان میکنن یعنی مؤمن حقیقی نیستن یزعمون گمان میکنن زعم گمان این انسان ها کدام برد هستند هستن که گمان میکنن یزعمون انهم امنو بما انزل الیک, وما انزل من من بما انزل الیک. و ما انزل من قبلک یا کسایی هستن که گمان میکنن که اینا ایمان دارن به بما انزل الیک و او چیزی که بر تو نازل شده پیغمبر و ما انزل من قبلک و آنچه که قبل بر پیغمبرای قبل از تو نازل شده یعنی میگه آیا ندیدی کسانی را که گمان میکنن که بالای تو و بالای پیغمبرهای که قبل از تو نازل شده بالای کلش ایمان دارن یوریدونه ان یه تحکم و الی اینا میخوان که تحاکم بکنن تحاکم چی مانه؟ یعنی برن پیش تاغوت که او برشان حکم بسازن او برش قانون بسازه او برشان فیصله بکنن او برشان رای حق و باطل تعیین بکنه حلال و حرام تعیین بکنه جائز و ناجیز تعیین بکنه وقد عمر رو در حالی که همین مردمایی که گمانه میکنن یا امر شدن که این یک فروبی که به طاغوت چی شون کافر شوند و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعیده و شیطان میخواد اینا رو گمراه بکنه گمراهی خوب و تو بعید دور که اینا رو آنقدر از حق دور بکنه که اینا هیچ راهی برای رسیدن به حق نداشته باشند اینا رو سر از این نقطه یک کم ماکس بکنیم از این نقطه یک کم ماکس بکنیم چه قسم الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك آینا الى بکسان که یزعمون گمان میکنن که انهم امن و ایمان آوردن بما انزل الیک به آن چیزی که نازل شده بالای تو و ما انزل من قبلك و اون چیزی که نازل شده پیش پیشاست یوریدون ان يتحاكموا ان يتحاكموا الى الطاغوت انا که تحاکم با طاغوت بکنن تحاکم با طاغوت چی هست تحاکم با طاغوت که انا میگن که میگن که قانون قانون برشان طاغوت بسازه طاغوت کی هست هر کسی که قانون مخالف قانون الله جل جلاله بسازه یا بخوايه که بسازه و مردم به او دعوت بکنه و ومی راضی باشه مثلا فرعون میگف انا ربکم الاعلمه پروردگار عالیتان هستم و باز فرعون مردم به عبادت خود دعوت کرد. اینال شما ببینین که فرعون, فرعون طاغوت است فرعون تاغوت است به حساب قرآن هامان و شداد و نمرود و یا هر کسی که مردم به دو چیز به طرف خود هر مخلوقی که خود به دو چیز مردمه به طرف خود دعوت بکنه به دو چیز او تاغود گفته میشه یکی که اینمی تاغود مردم به عبادت خود دعوت عباد بکنن بگرین بیاین بر ما سجده بکنین بیاین این ما رو کو بکنین بیاین در مقابل ما سرتان در زمین بارین به حالت سجده بیاین در زیر پای ما گسفند بکشین اگر اینمی نفر به اینمی کارهای شرکی که مردم در مقابل ازی می کنن راضی باشه ای تاغوت است اما اگر راضی نباشه و مردم باد از مرگ ازی بر عزی رکو و سجده می کنن پس او باز در روز قیامت این مردم بیزار است اظهار براعت می کنه مثل که عیسی علیه السلام از پیروای روای خود اظهار براعت می کنه کسایی که میگه ما نصرانی هستیم نصرانی که به عیسی علیه السلام رکو و, سجده می کنن و ساختگی جور کردن پس تاغوت اول است که مردم به عبادت خود بغیر از عبادت الله جلاله جلاله دعوت میکنه و راضی هست به بمیکنن این تاغوت هست و من یک فر به تاغوت باید به کافر به این تاغوت چی شوی؟ کافر شوی لا اله تو اله نیستی تو خودت یک مخلوق هستی دوم صفت تاغوت چی هست؟ کی رو تاغوت گفتم میتنیم؟ دوم صفت تاغوتی است که تاغوت مردم دعوت میکنه که بیاین به قانون ما تسلیم شوید قانون ما برتان تان میسازم چه قسم قانون میسازی تو؟ صلاحیت حلال کی داره؟ الله جل جل داره الله جل جل بر ما حلال، حرام، جایز، ناجایز کل حذیر الله جل جل رو کرده پس ایه چی میکنه؟ تاغوت مهمه که ایه حلال، حرام، جایز، نا ما بر تعیین میکنه از کسی که ای کارا میکنه ای, کی ای طاغوت است تاغوت است تاغوت است و تاغوت پیروی از تاغوت و همه یکفر به تاغوت باید به ای تاغوت کافر شوی در غیر از او خودت کافر میشه چرا؟ مثلا الله جل جلو ما حلالت این میکنه و احل الله البیع و حرم ربا الله جل جلو حلال کرد چیره؟ خرید و فروش و حرام کرد سوده پس حلال و حل... حرام کی میکنه؟ الله میکنه پیغمبر میتونه که بزده زی نمیتونه پیغمبر پیغمبر معصوم است. آنچه که الله حلال کرده او رو بر مردم تبلیغ میکنه چون پی... پیغمبر مبلغ از جانب الله جلجه لیکن خود پیغمبر از دل خود قانون ساخته نمیتونه و نمیسازه اینه بر پیغمبر الله جلجه چی میگه؟ اینه احللنه لکه ازواجه ما بر تو خانم هایت را حلال گردانی یعنی بر توی ما حلال گردانیم تو ازدواج بکنیم پس پیغمبر نمیتونست به اجازه الله جل جلوه ازدواج بکنه. و در یکی از قصه های قرآن امیه هست که وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کدام وقت نمیخواست که عسل بخورن آیت قرآن برش نازل شد که یا ایها النبی لیم تحرم ما احل الله لک چرا چیز را که الله بر تو حلال کرده او تو حرام میگردنی تبتغی مردات از واجک این میخواست به خاطر رضایت بعضی از خانمه خود گفت که دیگه من یعصلا نمیخورم فورا با یک لغزش عادی پیغمبر از طرف الله جلجوه برش تنبه میگه که یا ایوها النبی لما تو ما و ما الله لک چرا تو حرام میکنی چرا که الله برای تو حلال گردنی پس حتی پیغمبر صلاحیت نداره که حلال و حرام تعیین بکنه بلکه پیغمبر حلالی را که الله برش حلال گفته تبلیغ میکنه بگه حلال است و آنچه که پیغ... الله برش گفته که حرام است او رو تبلیغ میکنه پس وظیفه پیغمبر چی است؟ تبلیغ دین است خب آله پیغمبر نمیتونه پس اگر یک نفر می... میخواه که بر مردم حلال و حرام تعیین بکنه درش بگه که ما برای این قانونت تاین بی که چی حلال است و چه حرام در حقیقت ای انسان چی شده؟ ای انسان تحاکم به طاقود کرده اگر پیروی ازی کردی. پس حلال حرام اخلاق کس کدام اخلاق پسندیده هست و کدام اخلاق ناپسند است؟ اخلاق پسندیده و اخلاق ناپسند ما از چی بفامیم؟ اینمی که اخلاق خوب است اخلاق بد است عمل خوب است عمل بد است ایره الله جل جل هو میکنه و کسانی که در حکم الله جل جل هو به امرای الله جل جل هو مخالفت میکنن در اینجا اینا در حقیقت چی هستن؟ و میگه که ما برتن اخلاق نیست هرکس پارلمانش میشینه و پارلمان میگه که چی خوب است چی خراب است زنا خوب است یا خراب است پس اینجا تحاکم به چی شد؟ به طاغوت شد از این خاطر هر کسی که مخالف قرآن و نصوص شریعت اسلامی که ثابت است قانون بسازه او طاغوت است و پیروی از اونا کردن در حقیقت انسان از دایری ایمان میکشه. یه ای آیت شریفه میره میگه علم تر الالذین یزعمون آیانیری به طرف کسانی که گمان میکنه انه هم آمنو بی معنزل ایلیک و معنزل من قبلک که اینا ایمان دارن به معنزل ایلیک به آنچه که باید تو نازل شده به آنچه که قبل از تو نازل شده یوری یا با یوزیک گمان میکنن که ما ایمان داریم می خ... چی میخاین میخاین که تحاکم با طاغوت بکنن طاغوت برشان قانون بسازه و قانون از اونا را حکم قرار بدن فیصله کنن پیش از اونا برن و اونا باز برشان که والا این حلال است ای حرام است ای جایز است این غیر است ای خوب است این بد است پس کسی که و پیش تا وقد امر و ای کفرو به در حالی که این مردم امر شدن که باید به طاغوت کافر شون ذرا و من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى آیه قرآن میگه هر کسی که با طاغوت کافر شد اول باید کافر شد به طاغوت و یؤمن به الله به با الله ایمان بیاری فقد استمسك بالعروه الوثقى اینی هست که به اون عربی وسقا که قرآن است به عثمان الهی چنگ زده هست خب وقد امر ان يكفر به كافه و ويرید الشیطان ولكن شیطان چی میخواه؟ ان يضلهم ضلالا بعيدا شیطان میگه که اینا را خوب گمراهی بزرگ بکنه از این خاطر بسیار خطرناک است برادرای عزیز خواهرای محترم در قسمت حکم کردن آله مثلا یک نفر چادر نمی پوشه حجاب نمی پوشه چی است گناهکار است اما یک نفر دیگی که حجاب بدش می وامیه که من یه هجاب قانون می میگه قانون هجاب نباشه پس این نفر از دایری ایمان خارج میشه چرا و من لهم یحکم بما انزل الله فا هم الفاسقون فا اولای که هم الكافرون فا هم الظالمون انسان احیانا فاسق میشه اگر یحکم الله جل جلاله رو به حساب تنبلی ترک بکنه اما اگر یک نفره خودش قاضی هست و فیصله میکند در مجلس ششته و فیصله میکنه مخالف نیست ساز باشه نه رقص باشه فاوله فا که هم ظالمون یا ظالم هستن در جمله ظالما داخل میشه و اگر باز قانون می میسازد و در ماده قانون میگه که ما قانون میسازیم در این مؤسسه یا شرکت یا این مملکت در قانون ما شراب باشه زنا چیز گفتن نشه حرام باشه و یا مثلا ای گناه باشه و ایره قانون می سازه برای مخالف قانون الله جل جلون ف هم که همون کافرون بازی انسان حتی به کفر کشون نمیشه ای کافر میشه پس از این خاطر انسان مسلمان باید با این نقطه ها رو بسیار دقیق در نظر داشته باشه که وقتی ما کلمه می خانم کلمه یک کلید است کلید است این کلید کلید جنت است لیکن آیا کلید دندانه ها نداره؟ یا متی کلید لشه میباشه؟ پس دندانه های از این احکام اسلام است او وقت داخل جنت شده میتونی با این ای ای که دندانه ها چیزهایی را که این کلمه تقاضا میکنه او را هم در زندگی تطبیق بکنی و حکم الله راضی باشی در قلب حرج نباشه و یسلیم و تسلیم در, در در زندگی یزید قلبا به تسلیم باشه. و نقطه آخرش ای که تحاکم بر غیر الله نکنه و قانون الله را از قانون هر بلندتر بدونه الله جل جلاله برای همه ما و شما توفیق بده که همین قسم که عقیده اسلامی را می خانم. عقیده خدا از آیات قرآن بگیریم قرآن از نشان درست بخانیم و به او تفکر و تدبر بکنیم و از آیات قرآن عقیده خدا بگیریم و مطابق از زندگی بکنیم تا ای که سعادت دنیا و آخرت نصیب ما شود. و علیکم و رحمت الله و